مصنوی معنوی مولوی برنامه سی و چهارم فرمودن والی آن مرد را کین خاربان را که نشاندهی بر سر راه برکن. همچون شخص درشت خوش‌سخن در میان ره نشان دو خاربن راهگذرانش ملامتگر شدند بس بگفتندش بکن این را نکند هر دمی آن خاربن افزون شده پای خلق از زخم آن پرخون شده های خلق بدر دیز خار پای درویشان بخستی زار زار چون بجت حاکم به دو گفتین بکن، گفت آره برکنم روزیش من. مدت فردا و فردا وعده داد. شد درخت خار او محکم نهاد. گفت روز حاکمش ای وعده کج، در کار ما و پس مغج. گفت ال یا ام بیننا، گفت عجل لا توماتل، داینا. تو که می گویی که فردا این بدان که به هر روزی که می آید زمان آن درخت بد جوانتر می شود و این کننده پیر و مزدر می شود خاربون در قوت و برخواستن خارکن در پیری و در کاستن خاربون هر روز و هر دم سبز و تر خارکن هر روز زار و خوشکتر او جوانتر می شود تو پیرتر زود باشو روزگار خود مبر خاربندان هر یکی خوی بدد بارها در پای خار آخر زدد بارها از خوی خود خسته شدی حس نداری سخت به حس آمدی گرز خسته گشتن دیگر کسان که ز خلق زشت تو هستان رسان، غافلی ز زخم خود نهی، تو عذاب خیش و هر بیگانه ای یا تبر برگیر و مردانه بزن، تو علیوار این در خیبر بکن، یا به گلبن وصل کن این خار را، وصل کن با نار نور یار را، تا که نور او کشد نار تو را، وصل او گلشن کند، خار تو را تو مثال دوزخی او مؤمن است کشتن آتش به مؤمن ممکن است مصطفی فرمود از گفت جهیم کو به مؤمن لابگر گردد زبیم گویدش بگذر زمن ای شاه زود هین که نورت سوز نارم را ربود پس حلاک نار نور مؤمن است زان که دفع زد لایمکن است نار ضد نور باشد روز عادل کان ز قهران گیخت شد این ز فضل گر همه خواهی تو دفع شر نار آب رحمت بر دل آتش گمار چشمه آن آب رحمت مؤمن است آب حیوان روح پاک محسن است بس گریزان است نفس تو از او، زان که تو از آتشی، او آب خو. زاب آتش زان گریزان می شود که آتشش از آب و ایران می شود. حس و فکر تو همه از آتش است. حس شیخ و فکر او نور خوش است. آب نور او چو بر آتش چکد، چکچک از آتش براید، برجهد. چون کند چک چک تو گویش مرگ و درد تا شود این دوزخ نفس تو سرد تا نسوزد او گلستان تو را تا نسوزد عدل و احسان تو را بعد از آن چیزی که کاری بردهد. هد لالو و نسرین و سیسن بردهد. باز پهنا می رویم از راه راست بازگردای ای خواجه راه ما کجاست؟ آن تقریر بوده ای می حسود که خرت لنگست و منزل دور، زود. سال بگه گشت، وقت کشت نه. جست و فعل زشت نه. کرم در بیخ درخت تن فتاد. بایدش برکند و در آتش نهاد. هین و هین، ای راه رو بگاه شد، آفتاب عمر سوی چاخ شد، این دو روزک را که زورت هست زود، پیرفشانی بکن از راه جود. این قدر تخمه که مندستت بباز، تا بروید زیند دم عمر دراز، تا نمردست این چراغ باگوهر، هین فتیلش ساز و روغن. زودتر. آفت تاخیر خیرات فردا. <متحق> هین مگو فردا که فرداها گذشت تا با کلی نگذرت ایام کشت پند من بشنو که تن بند قویست که نه بیرون کن گرت میل نویست لب ببند و کف پرزر برگوشا بخلتن بگذار و پیشا سخا ترک شهوتها و لذتها سخاست هر که در شهوت فروه شد بر نخاست این سخا است از سر به بهشت وای او کس کف چونین شاخ بهشت اروت الوسقاست این ترک هوا برکشت این شاخ جان را بر سما تا برد شاخ سخا ای خوب کیش مرتو را بالا کشان تا اصل خیش یوسف حسنی و این عالم چوچا بین رسن صبر است بر امر اله یوسف آمد رسن در زندود است از رسن غافل مشو بگه شده است الحمدلله کین رسن آمیختند فضل و رحمت را به هم آمیختند تا ببینی عالم جان جدید عالم بس آشکار ناپدید این جهان نیست چون هستان شده وان جهان هست بس پنهان شده خاک برباد است و بازی میکند کاژنمایی پردسازی میکند این که برکار است بیکار است و پوست بانکه پنهان است مغز و اصل اوست خاک همچون آلت در دست باد باد رادان عالی و عالی نژاد چشم خاکی را به خاک افتد نظر باد بین چشم بود نوع دیگر اسب داند اسب را کو هست یار هم سوار داند احوال سوار چشم حس اسب است و نور حق سوار بی سواره اسب خود ناید بکار پس ادب کن اسب را از خوی بد ورنه پیش شاه باشد اسب رد چشم اسب از چشم شهر رهبر بود چشم او بی چشم شهر مستر بود چشم اسبان جز گیاه و جز چرا هرکجا خانی بگوید نه چرا نور حق بر نور حس راکب شود آنگهی جان سوی حق راغب شود اسب بی راکب چ داند رسم راه شاه باید تا بداند شاه راه سوی حس را که نورش راکب است، حس را آن نور نیکو صاحب است نور حس را نور حق از این بود، معنی نور علا نور این بود نور حسی می کشد سوی سرا، نور حقش میبرد برد سوی آلا، زن که محسوسات دونتر عالم است نور حق در یا و حس چون شب نمیست، لیک پیدا نیست آن را کپ برو، جز به آثار و به گفتار نکو. نور حسی کوغلیز غلیز است و گران، هست پنهان در سواد دیدگان، چون که نور حس نمی‌بینی بینی چشم، چون ببینی نور آن نیز چشم. نور حس با این غلیزی مختفی است چون خفی نبود زیای کانسفی است این جهان چون خس به با دست باد غیب آجز پیش گرفت و داد غیب گه بلندش می کند گاهی شپست گه درستش می کند گاه شکست گه یمینش میبرد برد گاه یسار گه گلستانش کند گاهیش خار دست پنهان و قلم بین خط گذار در جولان و ناپیدا سوار تیر پرران بین و ناپیدا کمان جانها پیدا و پنهان جان جان تیر را مشکن که این تیر شهیست تیر پرتابی زشست آگهیست مارمیت ازرمیت گفت حق کار حق بر کارها دارد سبق خشم خود بشکن تو مشکن تیر را چشم خشمت خون شمارد شیر را بوسده بر تیر و پیش شاه بر تیر خون آلود از خون تو تر آنچه پیدا آجز و بست و زبون بانچه ناپیدا چنان تند و هرون، ما شکاریم چون این دام کراست، گوی چوگانیم چوگانی کجاست. می میدوزد این خیات کو، میدمد میسوزد این نفات کو، ساعت کافر کند صدیق را، ساعت زاهد کند زندیق را. زان که مخلص در خطر باشد زدام تازه خود خالص نگردد او تمام زان که در راه است و رحزن بیهد است آن راحت کو در امان ایزد است آینه خالص نگشت او مخلص است مرغ را نگرفت است او مقنس است چون که مخلص گشت مخلص باز رست. در مقام عم رفت و برد دست، هیچ آینه دگر آهن نشد، هیچ نان گندم خرمند نشد. هیچ انگوره دگر غوره نشد، هیچ میوه پخته با کوره نشد. پخته گرد و از تغییر دور شو، روچ برهان محقق نور شو. ز خود رستی، همه برهان شدی، چونکه بنده نیست شد سلطان شده ورعیان خواهی سلاه دین نمود دیده ها را کرد بیناو و گشود فقر را از چشم و وسیمای او دید هر چشمی که دارد نور هو شیخ فعال است به آلت چو حق با مریدان داده به گفت سبق دل به دست او چوموم نرم رام مهر او گه ننگ سازد گاه نام مهر مومش حاکی انگشتری است باز آن نقش نگین حاکی کیست حاکی اندیشه زرگر است سلسله هر حلقه اندر دیگر است این صدا در کوه دلها بانگ کیست گه پر است از بانک این که گهدهی است هر کجا هست او حکیم است او استاد بانگ او زین کوه دل خالی مباد هست که کاوا مصنا می کند هست که کاواز ستا می کند میزهاند که از آن آواز قال صد هزاران چشمه آب زلال، چون ز کوه آن لطف بیرون می شود آب در چشمه ها خون می شود زان شاه همایون نال بود که سراسر تور سینا لال بود جان پذیرفت و خرد اجزای کوه ما کم سنگیم آخر ای گروه ناز جان یک چشمه جوشان می شود نه بدن از سبز پوشان می شود نه صدای بانگ مشتاقی درو نه صفای جرعه ساقی درو کو همیت تازه تیشه واسکولاند، اینچون این که را با کلی برکنند بو که بر اجزای او تابد مهی بو که دروی تاب مه یابد رهی چون قیامت کوها را برکند پس قیامت این کرم کی می کند این قیامت زن قیامت کی کم است آن قیامت زخم و این چون مرحم است هر که دید این مرحم از زخم ایمن است هر بد که این دید او محسن است ای خنک زشته که خوبش شد حریف بای گل روی که جفتش شد خریف نان مرده چون حریف جان شود زنده گردد نان و عین آن شود حیزم تیره حریف نار شد تیرگی رفت و همه انوار شد در نمکلان چون خر مرده فتاد آن خری و مردگی یکسو نهاد ثبقت الله هست خم رنگ هو پیس ها یک رنگ گردد اندرو چون دران خم افتد و گویش خم از طرب گوید منم خم لا تلم آن منم خم خود انال گفتن است رنگ آتش دارد الا آهن است رنگ آهن محو رنگ آتش است زاتشی میلافد و خاموش وش است چون به سرخی گشت همچون زر پس انن نار است لافش بی زبان. شد زرنگ و طبع آتش محتشم، گوید و من آتشم من آتشم. آتشم من گر تو را شکست و زن، آزمون کن دست را بر من بزن. آتشم من، بر تو گر شد مشتبه، روی خود بر روی من یکدم بنه. آدمی چون نور گیرد از خدا، هست مسجود ملایق ز با. نیز مسجود کسی چون ملک، رسته باشد جانش از تغیان و شک. آتش چه، آهن چه لب ببند، ریش تشبیه مشبه را مخند. پای در دریامن کم گوی از بر لبه دریا خاموش کن لبگزان گرچه صد چون من ندارد تا به بحر لیک می نشکی بمزغرقا به بحر جان و عقل من فدای بحر باد خون بهای عقل و جان این بحر داد تا که پایم میرود رانم درو چون نماند پا چوبتانم درو بی ادب حاضر زغایب خوشتر است حلقه گرچه کش بود نه بردر است ای تنالوده بگرد حوز گرد پاک که گردد برون حوز مرد پاک کو از حوز محجور افتاد ز پاکی خیش هم دور افتاد پاکی این هاوس به پایان بود پاکی اجسام کم میزان بود زان که دل حوزه است لیکن در کمین، سوی دریا راه پنهان داردین. پاکی محدود تو خواهد مدد، ورنه اندر خرج کم گردد عدد. آب گفت آلوده را در من شتاب، گفت آلوده که دارم شرم از آب، گفت آب این شرم به من کی روید. بی من این آلوده زایل کی شود زاب هر آلوده کو پنهان شود الحیا او یمنا اول ایمان بود دل ز پایی حوز تن گلناک شد تن ز آب حوز دلها پاک شد گرد پایی حوز دل گرد ای پسر هنز پای حوز تن می کن هزار. بحر تن بر بحر دل بر همزنان در میان چون بر زخن لا یبغیان گر تو باشی راست و باشی تو کژ پیشتر می غش بدو و واپس مغش پیش شاهان گر خطر باشد بجان لیک نشکی بند از او با همتان شاه چون شیرین تر از شکر بود جان به شیری نی خوشتر بود. ای ملامت گر سلامت مرتو را، ای سلامت جو رها کن تو مرا. جان من کوره است با آتش خوش است، کوره را این بس که خانه آتش است. همچو کوره عشق را سوزیدن است. هر که او کور باشد کوره نیست، برگ بی برگی تو را چون برگ شد. جان باقی یافتی و مرگ شد. چون تو را غم شادی افزودن گرفت. روزه جانت گل و سوسن گرفت. آنچه خوف دیگران آن امن توست. بد قوی از بحر و مرغ خانه سست. باز دیوانه شدم من ای طبیب. باز سودایی شدم من ای حبیب حلقه های سلسله تو زو فنون هر یکی حلقه دهد دیگر جنون داد هر حلقه فنون دیگر است پس مرا هردم جنون دیگر است پس فنون باشد جنون این شد مثل خاصه در زنجیر این میر عجل، آن چونان دیوانگی بکس است بند که همه دیوانگان پندم دهند آمدن دوستان و بیمارستان جهت پرسش زنون مصری رحمت الله علی. این چونین زنون مصری را فتاد، کندرو شور و جنون نو بزاد. شور چندان شد که تا فوق فلک میرسید از وای جگرها را نمک. هین منه تو شور خود ای شور خاک پهلوی شور خداوندان پاک خلق را تا جنون او نبود آتش او ریش هاشان میر بود چون که در ریش عوام آتش فتاد بند کردندش به زندان نهاد. نیست امکان واکشیدن این لگام گرچی زین ره تنگ می آیند آم دیده این شاهان ز آمه خوف جان کین گروه کورند و شاهان بینشان چون که حکم در کف رندان بود لاجرم زنون در زندان بود یک سواره می رود شاه عظیم در کف طفلان چونین در یتیم در چه دریا نهان در قطره آفتاب مخفی در ذره آفتاب خیش را ذره نمود و اندک اندک روی خود را برگشود جمله ذرات در وای معو شد آلم از وی مست گشت و سعو شد. چون قلم در دست غداری بود، بیگمان منصور برداری بود. چون صفیحان راست این کارو کیا، لازم آمد یقتلون الانبیا. انبیا را گفته قوم راه گم، از صفح اینا تطیرنا بکن، چون به قول اوست مسلوب جهود, پس مرو را امن کهی تانت نمود. جهل ترسابین امان انگیخته، زن خداونده که گشت آویخته چون دل آن شاه زیشان خون بود، اسمته و انتفیهم چون بود. ذره خالص را و زرگر را خطر باشد از قلاب خاین بیشتر. یوسفان از رشک زشتان مخفیند که ادو خوبان در آتش میزیند. یوسفان از مکر اخوان در چهند که از حسد یوسف به گرگان می از حسد بر یوسف مصری چه رفت؟ این حسد اندر کمین گرگ است زفت لاجرم زین گرگ یعقوب حلیم داشت بر یوسف همیشه خوف و بیم. گرگ ظاهر گرد یوسف خود نگشت این حسد در فعل از گرگان گذشت رحم کرد این گرگ و از عذر لبق آمده که نازهب نا نستبق صد هزاران گرگ را این مکر نیست عاقبت رسوا شود این گرگ بیست زان که هشر حاسدان روز گزند بیگمان بر صورت گرگان کنند هشر پرهرس خس مردار خار صورت خوک بود روز شمار زانیان را گند اندام نهان خامر خاران را بود گند دهان گند مخفی کان به دلها می رسید گشتند در هشر محسوس و پدید بیشه آمد وجود آدمی بر شو زین وجود ارزان دمی در وجود ما هزاران گرگ و خوک سالح و ناسالح و خوب و خشوک حاکم آن خوراست کان غالب است چون که زر بیش از مس آمد آن زر است سیرت کان بر وجودت غالب است هم بران تصویر هشرت واجب است ساعت گرگ در در بشر ساعت یوسف رخی همچون قمر می از سینه ها در سینه ها. از ره پنهان صلاح و کینه ها بلکه خود از آدمی در گا و خر می رود دانایی و علم و هنر اسب سکسک می شود رهوار و رام خرس بازی می کند بز هم سلام رفتن در سگز آدمیان هوس تا شبان شد یا شکاری یا حرس در سگ اصحاب خوی زانوفود رفت تا جویای الله گشته بود هر زمان در سینه نوعی سر کند گاه دیو گه ملک گه دا مدت زان عجب بیشه که هر شیر آگه هست تا بدام سینه ها پنهان ره است. دزدی کن از درون مرجان جان ای کم از سگ از درون عارفان چون که دزدی آن در لطیف چون که حامل میشوی شوی بار شریف